خب اگر ما آیات 99 تا صده کم سوره مبارکه تاها را بریم در واقع بر اساس سیاق بریم مشاهده کنیم میبینیم که توی آیات پیشین که جریان در واقع پرماجرای حضرت موسا و بنی اسرائیل و فرعونیان و سامری در واقع مطرح شده اینجا به عنوان نتیجه گیری کلی خداوند بیان ناشته که ما در واقع اخبار گذشته را یکی بعد از دیگری برای تو بازگو میکنیم که نقص سالای که من انباع ما قد سبق و در واقع ما از نایه خودمون قرآنی به تو دادیم و قد آتیناک من لدون نازکرا خب این ویژگی هایی که هست سرگذشت پیشینیان و مواردی که هست حالا بعد از اون اگر ما بریم دقت کنیم ما میخوایم خطاب آیه را بدونیم اشاره میکند خب حالا افرادی هستند که حقایق قرآنی و درس‌های عبرت تاریخی را فراموش میکنن من ارازا عنه فإنه يحمل یوم القیامت وزرا کسی که در واقع از قرآن روی برگردونه تو قیامت بار سنگینی از گناه، گناه و مسئولیت بر دوشش در واقع خواهد کشید دیگه همون نکته که من بهتون گفتم این بارهای سنگین از انواع گناهان و انحرافات فکری و اعتقادی را شما ببینید نتیجه در واقع اینه که انسان برگرده در واقع اعراض کند به بیراهه میره دیگه ببینید شما باید توجه کنید نکته که اینجا اومده خدمت شما عرض چه که وزر وزر در واقع اینجا بار سنگین هست اینجا اگر توجه کنید وزرن به صورت نکره اومده که تاکید رو برسونم شما این مطلب رو در نظر بگیرید بعد میفرمایید که خالدین فی اونها در میان این اعمالشون در واقع جاودانه خواهند ماند و در واقع این بار سنگین گناه بعد باری برای اونها تو روز قیامت هست. و ساء لهم یوم القیامه هملا ببینید فیه طبق نکته که در واقع مرجع زمیر در فیهه طبق چیزی که آیت الله سبحانی میگوید و قالب اکثر تفاسیرم گفتن به وزر برمیگرده ببینید یعنی اینه که اونها در همون وزر و مسئولیت و بار سنگینشون همیشه خواهند موند این در واقع اشاره جدا از نکته به تجسم اعمال هم اشاره دارد دا. یعنی آقا انسان به واسطه اعمال و کارهایی که تو دنیا انجام داده تو قیامت چیه پاداش نیکی و مجازات می شود حالا در ادامه بحث نفخ و این موارد مطرح شده ببینید اینجا پس خلود در کیفر هست دیگه. این اعراض نتیجه چیه؟ نتیجه این اعراض اینه که در واقع ایمان در واقع اینا نیوردن و قرآن اونو نادیده گرفتن محور آیات در واقع کفاری هست که به رسالت پیام بر روز قیامت چیه؟ ایمان ندارند ببینید شما هرچی میرید جلوتر فضا رو براتون روشنتر میکنه یوم یوم فخوف سوه و نه شرل مجرمینه یوم ازن او زن رو شما مشاهده کنید روزی که تو سو دمیده میشه و مجرمان رو با بدن های کبود در آن روز جمع میکن بعد یتخافتون بین هم ان لبستم اللا اش اونها آهسته با هم گفتگو می کنند بعضیاشون هم میگن شما فقط ده شبانه روز در عالم برزخ توقف کردید. نمیدونن چقدر طولانی بوده. ببینید شما این بیانها این خطابها رو وقتی نگاه می مشخص هست که چیه باید برگرده به افراد خاص افرادی که راض کردند از قرآن اراض کردنن اینا کافران هستند که روی گردونان، واقعی قرآن کریم افرادی که در واقع روی یردانن از رسالت پیامبر اکرم از پیام های قرآن کریم از روز معاد این شما بینیدین اینها برای ما مشخص میکنه چون بعدش دقیقا آیات معاد آمده است نکته که ایشون هم بیان کرده بود ما باید مجموع آیات را در نظر بگیریم پس اینجا بحث معمنانه در واقع گناهکار نیست اینم یه شاهد دیگه که ما میخواییم بگیم آقا خلود در دوزخ ادعایی که شما دارید شامل در واقع شامل معاملان گناهکار میشود میگیم نه نیست اینجا مربوط به کفاره آیه که استناد کردید درست نیست وازیشون یه خدمت شما شود که در تکمیل مباحث به آیات در واقع به صورت کهف استناد میکند که خدمت رو هر شود در آیه پنج و هفتم سوره کهف آمده است که و من از لموم من ذکر به آیات ربهی فعرز آنها و نسیه مقدمت قدمت این انا جلنا علا قلوبه هم اکنتن ان یفقه هم و فی هم وقرا و این تدعوه هم الالهدا فلن یحتدو ازن ابدا در واقع میگه چه کسی ستم کارتر از اون کسی که آیات پروردگار رو که به او تذکر داده شده و از اون روی, او روی گرداند و اون چه با دستای خودش پیش فرستاده فراموش کرد و خدا میگه ما بر دلهای اینگون افراد پرده افکندیم که نفهمند تو گوشهاشون سنگینی قرار دادیم تا صدای حق را نشنوند از این رو در واقع اونها را به سوی هرگاه به سوی هدایت بخونی هرگه صدایت نمیشوند ببینید اینجا خدمت شما عرض شود که اینه که خداوند عجله نمی کند در مجازات هم سنت اذلال هست دیگه افرادی که به حال خودشون رها شدن امحال شدن بس امحال رو مطرح می کند اینا در تیر وقتی خودشون رها شدن و خدمت شما عرض شود که دیگه هیچ گونه شما توی سوره نساء اومده دیگه بل تبع الله علیه ها به کفر فلایؤمنون الا قلیلا اینکه که خدا به واسطه کفتشون بر دلهای اونها مهر زده و جز گروه انده ایمان نمیارن معلومه شما از مجموع اینها بس اعراز اومده دیگه افرادی که در واقع گفتم گناه شده در واقع وجودشان یعنی فراتر از ملکه اینها گناه شده از وجودشان پس اینجا هم بس کفاره یا خدمت شما عرصه بعد آیه دیگه که معتظله بهش استناد میکنند آیه 103 سوره مبارکه مؤمنون هست که میفرماید و من خفت موازینهو و الذین لدین خسر و انفوس فی جهنم خالدون اولایک لدین خسر و فی جهنم خالدون اونه که وزنه اعمالشون سبک باشه افرادی هستند که سرمایه وجود خودشون رو از دست دادن و در جهنم در واقع جاودانه خواهند موند خب این آیات رو هم شما وقتی میرید نگاه میکنید بحث موازین رو که مطرح شده خدمت شما هر چه اگر آیات پیشین رو شما برید نگاه کنید که میفرماید فمن سقالت موازین هون فعلاکه همون مفلهون و سنجش اعمال هستگه بعد از قیام قیامت نخستین مسئله سنجش اعمال هست دیگه. حالا افرادی که سنگین بار هستن ترازوی اعمالشون سنگین هست، رستگار هستن دیگه. که حالا اینجا بس موازین وسیله سنجش وزنه دیگه. ببینید ما در مقابل این افراد ای افرادی که ایمان و عمل ساله دارن افرادی که ایمان و عمل ساله ندارن. و میزان اعمالشون سباک یا بیوزنه اینها در واقع زیان کردن خسران کردن سرمایه وجود خودشون را از دست دادن و در جهنم جاودانه خواهند بود خسرو هم این بیان این هست که اونها بزرگترین سرمایه خودشون یعنی هستی خودشون را توی تجارت دنیاوی از دست دادن بعد ببینید آیات بعد را شما برید نگاه کنید دیگه این آیات دیگه از آیات شما این آیات عذاب رو هست دیگه از آیاتی که آدم واقعا همونگونه که معاملی تو خطبی متقین میگه متقین وقتی این آیات رو میخونن در واقع خدمت شما عرض که خوف پیدا میکنن تلفه و وجود هم تلفه و وجود هم و نار و هم فی ها کالهون شعله های سوزان آتش همچون در واقع شمشیر به صورت هاشون نواخته میشه و در دوزخ در واقع چهره عبوس دارن ببینید اینام مثلا شما در نظر بگید شعله آتش یا نور شدید آفتاب و باد سموم و اینها مثل شمشیر به صورت انسان نواخته بشه که شما دیگه معلوم هستی که این آیات برای اکیاب کار رفته برای در واقع کفار هستی اگر شما در سیاق این آیات دقت کنید کاملا فضا رو بر ما روشن میکنند. هرچی شما این میرید جلوتر. الم تکون آیاتی توتلا علیکم فکنتم به هاتو زبون به اونها میگه گفته میشه که آیا آیات من بر شما خونده نمیشد پس اونها رو تکذیب میکردید. بعد اونها هم گفتن که قال ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا غومن ضالین. بدبختی بر ما چیره شد و ما در واقع قوم گمراهی بودیم بعد شما همینجور مشاهده میکنین رب و اخرج نام اینها فعین ادنا فعین نازالمون بعد شما میدید این تعابیر رو نگاه کنید قال سو فیها بلا تو کلمون به اونا میگن برید دور شید بسرایی میکنن برای سگ این تعبیر رو به کار دیگه این تعبیر رو که به کار رفته است در واقع شدت مجازات را میرسانند شما باید از این مقابله ها متوجه میشوید بعد در پایانم وقتی میرید آیات 109 به بعد را مشاهده می کنید که طبیعتا فضا رو برامون روشن میکنه و میفرماید که انه کان فریق من عباد یقولون قولون انا آمنا فاغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر ال راهمین در واقع آیا فراموش کردید که گروه از بندگان خاص من میگفتند پروردگار ما ایمان آوردیم و ما را ببخش, و ببخش بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانید و شما اونها را به سخره میگرفتید و اتخذتوم حتی انسا و ببینید این توابیر رو ببینید. حتی انسا و ذکری و کنتم من, من هم تزحکون اما شما آنها را به باد سخره گرفتید، مسخره گرفتید تا شما را از یاد من قافل کردن و شما با, با آنها خندیدید. ببینید الان آیات بر ما فضا رو روشن میکنه سبک میزانان در واقع گروه های تکسیب کننده و غیر مومنی که تو روز قیامت از در واقع زیانکاران هستند. اینا در مقابل مفلهان هستند. نقطه مقابل اونا هستن دیگه اینا میشن کفار طبق این آیات شما بروید تو سوری مومن رو نگاه کنید طبیعتاً اینجا بحث کفار مطرح شده خب یکی دیگه از آیاتی که شما مشاهده می کنید قائلان به خلود به اونها استناد کردن خدمت شما هر خلود در دوزخ رباخاران بعد از تحریم هست که در آیه 275 پنجم سوره این نکته اومده که ببینید شما بعد از اون که رباخاری نقط مقابل انفاق بیان شده است بعد از اون که شما بینید در برابر درباره انفاق و در واقع بزل مال برای حمایت از نیازمندان در واقع مطرح شد نقط مقابل اونها بس نقطه مقابل اون که در واقع هست بس رباخاری رو مطرح میکنه که موجب افسایش فقر تو جامعه و تراکم ثروت تو دست یه دی محدود می شود که این در واقع تعادل اجتماع را به هم می زند بس ممنوعیت حکم ربا مطرح میشه. وقتی ما لحن آیه را در واقع میریم مشاهده شاهده می درباره این بار در باره ربا گفتگوهایی شده ما وقتی بریم تاریخ نزول سوره قرآن مراجعه کنیم این نکته را متوجه میشیم. توی سوری روم اگر شما برید نگاه کنید این مواردی که میگم برای اینه که ذهنمون درگیر توی سوره روم که توی جدول ترتیب نزول سیومین سوره هست و در مکه نازل شده از رباب سخن به میان آمده و بعد خدمت شما هر شود که البته به شکل انذار اخلاقی هست هسته و ما آتایتون من ربن لیر بو وفی اموال ناز فلا یر بو اندالا نکته که شما میبینید رباخاری در پشکای خدا در واقع یه کاره پسندیده ای نیست خدمت شما ارز شود که بحث مطرح میشه در واقع اینه که از نظر افراد کوتابین ممکنه ثروت به وسیله رواخاری زیاد بشه طبق آیه اما در پیشگاه حق حالا چیزی برای نفسوده نخواهد شد این به صورت انزالی در سوره روم اومده بعد از هجرت شما می‌بینید که تو بعض سوره ها که به ترتیب سوری بغر آل امران و نسا هست شما این مطلب رو مشاهده می کنید خدمت شما عرض شده. عرض شود که نکته ای که اینجا ما داریم توی سوره ها جدول نزول رو میبینید. خواستم بگم این مطالب اومده. هرچند اوله سوره بقره قبل از آل عمران نازل شده اما بعید نیست که خدمت شما عرض شود آیه 130م سوره آل امران که حکم سریح تحریم ربار رو بیان می کنه حالا یه دفعه گفتن شاید پیش از سوره بقره و آیه ه تا پنجم سو بقره نازل شده پس شما ببینید میخوام میگم فضا بحث شده هست شما نمیتونید بگید که آشنا نبودن حالا خدا داره تو تشبیه حال رباخاران رو در واقع مجسم برای ما میکنه الذيگه اکنون ربا لا یقوموممون الا کما یغوم و لذییت خبت من المست اونهی که ربا میخورن بر نمیخیزن مگر مانند کسی که برصد تماس شیطان در واقع با او دیوانه شده و اون نمیتونه تعادل خود را حفظ کنه گاه زمین میخوره و گاه چیه بر میخیزن. آدم مثل یه آدم مسروع یا دیوانه هست دیگه تعادل نداره شما بینید اینا داره ترسیم حال اونها را تو روز قیامت و به هنگام ورود توی صحنه رساخیز را بیان میکنن یا اینکه یه عده میگن آقا بسو عرصه محشر رو میگه بعضی هم آقا میگن این تجسم اعمال تو دنیا هست اونا مثل دیوانگان میشود چرا چون که فاقد تفکر صحیح اجتماعی هستن این افراد نمیتونن منافع خودشونو در نظر بگیرن مسائل مثل تعاون و همدردی و عواطف انسانی و نو دوستی و اینها برای این افراد اصلا معنی ندارد یه استثمار در واقع طبقات برای اینها مهم است افراد زیردست رو در واقع به, به کار واقع کار میگیرن دسترنج اونها رو غارت میکنن این مواردی که ما مشاهده میکنیم که متاسفانه گاهی اوقات توی جوامع رخ داده به ویژه شما در واقع یهودی ها این تفکر رو دارن خب حالا من دیگه نمیخوام وارد این مسئله شیطان بشوم بیماری روانی جنون هست چه نکته ای هست تاثیراتی که شیطان میگذاره در اینها بعد یک منطق رباخاران رو خداوند اینجا بیان میکنه در واقع اینه که اونها گفتن که بی همانند رباس و تفاوتی میونه اون دو نیست ذالکه به انهم قالو انم ال بی او مثل ربا یعنی هر دو از انواع مبادله است که با رضایت طرف این انجام میشه حالا قرآن در مقابل این منطق غلط میگه که و الله البی و هر رمال ربا خدا بی را حلال کرد و ربا را حرام این فلسفه که شما مشاهده می کنید توضیحش خودتون می مطالعه متعالی می کنید که تفاوت در چی هست بعد خدا راه را بر توب کاران باز کرده میگه حالا هر که اندرز خدا به او برسه و از رباخاری خودداری کنه سودهایی که پیشتر قبل از حکم تحریم ربا به دست و مال او هست. و کار او به خدا میشه و گذشته او را خدا خواهد بخشید و من جعه هم من ربیهی فنتها فله هما سلف و الى الله. حالا افرادی که خیر سر میکنن گستاخ هستن در مقابل این حکم ایستادگی میکنن ادامه بدن خدمت شما عرض شود مسیرشون را این گناه را همچنان ادامه بدن اونا اهل دوزخ هستن جاودانم تو اون خواهن موند و من آده فعلا که از خواب و نار ها خالدون خب ما این مطلب رو بیان کردیم ببینید اینجا خدمت شما هر چه که تو این جمله بحثی که ما داریم باید دقت کنیم خدمت شما هر چه که مفسرا میگن آقا رباخاران حالا طلبهایی از افراد داشتن حالا بعد از نزول آیه میتونن برن از اونها بگیرن سودهایی که بوده میگیم نه آقا این دیگه داره خداوند بیان میکنه دیگه یعنی تکلیف رو مشخص کرده ببینید اینجا تعبیر من و منعاده اینه که مقصود در واقع گروه اون گروه از یعنی در واقع اون رباخارانی هستن که بعد از شنیدن تحریم الهی باز به عمل رباخاری ادامه میدن نشون میده اینها در واقع دارن به تشریع و دستورات الهی پشت پا میزنن دیگه وحی الهی رو تو عمل دارن تکسیم میکنن و ایشون میگه که رباخوران نکته ای که میگه آقا رباخوران پیش از تحریم آیه پیش از آیه تحریم ربا در واقع دو تیپ بودن دیگه بلاز انحرافی انحراف عقیدتی داشتن که میگفتن بی با ربا یکسان هست قالو این نمل مثل ربا یه انحراف عملی که بس معاملات ربوی هسته یه این معاملات انجام میدن حالا بعد از تشری اش... کسی که به اون مسیر پیشینش ادامه بدهد دوتو انحراف را همزمان با هم دارد هم انحراف عقیدتی دارد و هم انحراف عملی به این خاطر هست که جوافدان در آتش دوزخ خواهد بود شما اگر برید فلسفه ی تحریم ربا چرا اصلا خداون ربا را حرام کرده اینا را برید بخونید میبینید که افراد رباخار اصلا چه ضربهی در حقیقت به پیکره اجتماع وارد میکنند چقدر در واقع این نکته است اصلا اینگار جنگ با خدا هست رباخاری مثل جنگ با خدا است این عذاب, عذاب مخصوص کفارا نه افراد با ایمان طبیعتا افراد با ایمان گناکار نیست رباخارانی که اصرار و ربا دارن اینا ایمان درستی ندارن با قانون مسلم الهی مخالفت میکنن به جنگ با خدا برمیخیزن و این رباخاری مستمر و دائم موجب میشه که آنها،, آنها در واقع بدون ایمان از دنیا برن و آقابتشون تیره و تار بشه پس اینم با م... باز ما مشاهده میکنیم که در اداد آیات کفار میباشد در شمار آیات کفار است. آفران است. خب آیه بعد که مطرح می شود و دوازدهمین مورد هست تو این آیه می شود درنگ کرد یعنی شما یازده آیه پیشین رو که قائلان به خلود در دوزخ مطرح کرده بودند ما میگیم آقا این موارد به کفار برمیگشت به مؤمنان گناهکار بر نمیگردد آیه هم نیازمند یک تأملی هست که ما باید توی اون دقت کنیم و خدمت شما هر چود نکته اصلی تو همین آیه هست که این نیازمند تعمل و ملاحظه است که میفرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها و غذب الله علی و لعنه و عد له اضابن عظیما حالا هرکس فرد با ایمانی را رو از روی عمد به قتل برسونه مجازات او در دوزخ دیگه در حالی که جاودانت او میمونه و خدا او قذب میکنه و او را از رحمتش دور میسازد و در واقع عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است و مجازات قتل عمد هست دیگه یعنی شما وقتی نگاه میکنید توی سوره نسا بعد از اون مجازات قتل خطا تو این آیه مجازات کسی که فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برسونه بیان شده که این شما میمینید آدم کشی یکی از بزرگترین جنایات و گنا... گناهان خطرناک هست دیگه که در واقع موجب می‌شود اون سالم بودن اجتماع به هم بخورد دیگه که در آیات به این نکته اشاره شده است که من یه چند نمونه آیه از اینا رو بگم مثلا نمونهش آیه من قتلن نفسن به غیر نفسن او فسادن فیل فکن فکرن نما قتلن ناسه که تو سوره معایده آیه سی و آمده است خب اینجا ما باید در مورد این آیه یک تبیین هایی داشته باشیم بخش به بخش آیه رو واکاوی کنیم